اوضو بالله من شیطان رجیم بسم الله الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری و امری و خلال من لسانی قولی محترم موضوع درس امروز ما به اساس تقاضای بسیاری از دوستان موضوع هجاب و سطر عورت است موضوع حجاب یکی از موضوعات دقیق است که لازم است هر مرد و هر زن مسلمان درباره باری زی دقیقا فکر بکنند و احکام حجاب و سطر عورت بفاهمن و در زندگی عملی خود ایره 24 ساعت تطبیق بکنند. پیش ازی که درباره حجاب که بزنیم باید تا نارس بکنیم که فهمیدن موضوع حجاب و یا تطبیق ازی و تطبیق سایر احکام اسلام با حساب فلسفه گویی و دلیل پیدا کردن و بر خود راه بیرون رفت پیدا کردن نمیشن. دین مقدس اسلام دین اخلاص است دین تواضع، است دین تسلیمی و احکام خداوند متعال جل جلوهو است وقت آیت شریف یک, یک صحابی مبارک در مدینه منواره می در قسمت را نزدیک تقریبا یک فاصله کم بندازی یک کیلومتر به خانش مانده بود که برسه یا کسی آمد در مروی شد گفت که خبر داری این صحابی مبارک چون او وقت شراب قاطعا حرام نشده بود تجارت شراب ها میکرده یا هر چیزی که میکردن مقصد خمای در پشت یک عصب خمای شراب بارکرگی بودی در طرف خانه خود میارد یا طرف دوکان خود میخواستی رو بفروشن مجارد که برش گفته شد که خبر داری که حکم قرآن نو است گفت که چی است گفت آیه شریف نازل شده که خداوند متعال جل و گفت که اینم الخمر والمنشر و الانصاب والازلام و رجس من عمل الشیطان فاجت نبوه لعلکم تفلحون وقتی که آیه شریف برش خوانده شد میگه ای فوراً سنگا گرفت و این خوم شراب را شکستان اون نفر گفته گفتن با کسا که یک دقیقه گفت چیگه پس گفت آل آیات شریف خواه آمده که شراب حرام ساخته اینالی خومه که از شراب است یاغ بدر تو میگره قیمتی هم است خیر است در خانه برسان این خومه را باز خالی کن از خومه استفاده کن این صحابی مبارک اخلاص بسیار زیاد داشت گفت که از همین جا تا خانه خود که من می‌دستم اینم جه حکم خداوند معطل قرار می‌گیره به خاطر 100 روپیه، 50 روپیه یا 80 روپیه از خم از این خاطر من جه جا جای به جای چون حکم خدا را شنیدم فوراً طال نمی‌تم چرا که شیطان عادت داره که برای انسان آیات قرآن چی میگه ولا تتبعو خطوات الشیطان شما از گام های شیطان پیرهی نکنید شیطان چی میکنه؟ انسان اما تا آهسته آهسته کم کم گمراه میکنه یک روز میگه که برو نماز خیر است در مسجد نخواند، در خانه بخواند، مردم در خانه میخواند و توان بخواند روز باز که در خانه خواندی جماعت سر ترکت باز میگه که برون روز پنج وقت نخواندی خیر است چار وقت شام که خواندی سه باز سی وقت شد دو وقت شد و بلاخره خیر است دیگه عبادتا خاص نماز دیگه کارهای خوب رو میکنی نماز به این شکل آیت قرآن میگه ولاتا طبی و خطوات شیطان, کوچک کوچک شیطان نکنین. که برو ما سوا میکنم برو باز دیگر روز میکنم برو که که باز مریش سفید شدم برو که باز سنم کلا شد چی خبر داره انسان که آیا بلیش سفیدی و با سن بزرگی میگاپ میرسن یا نمیرسن موضوع حجاب عین گپ است کسایی که اخلاص دارن و ما همیشه سخنای ما برای انسان های مخلص است ما اعلان میکنم کنم عزیز و برادرای عزیزی که اخلاص ندارین سیدی ما رو مشنوین ما سخن ما برای انسان های اخلاص نیست انسانایی که تقوانه دار برازون است و فیلسفه نیست که تو فلسفه میگو بر خود را پیدا میکنی ما را ملامت میکنی ولا چطورست چنان ماسخنهای ما و تای ما و های ما بر کسایی داده میشه که او اخلاص داره میخواید دین بفهمه و عمل بکنه به نهان که ما بر از این مردم از برشان بگیم و الحمدلله رب العالمین ما دیدیم که این مردمه که اخلاص دارن و تقوی دارن و آیت قرآن از إلا منهم المخلصین شیطان خودش گفته که ما کل بنده های خداوند گمراه میکنم بجوز از بنده های با اخلاص به کسی که اخلاص نداشته باشه شیطان دوست از اوست ما که دوستای شیطان نمیتونیم چیز بکنیم اما سخنای ما متوجه او مسلمانایی هستند که احکام خداوند خبر ندارند و میخواهند بفامن و ازو استفاده بکنن ببینن مسئله بلهباسی شیطان از کجا شروع میکنه شیطان از اول اولین پلانی که سنجید آمد بره آدم علیه السلام و بیبی بی هوا قسم خورد و قسم هم ما ان لکما من الناصحین گفت ما قسم خورد که من بر شما نصیحت میکنم کنیم ما دوستتان هستیم بهنزی از, از این چیز درخت یا نباتی که ممنوع شدین از نخورین بخورین و قسم هم ما لکما ان لکما من الناصحین وقتی که ایگه به زد و وقتی که اونها گپ شیطان زلیله کردن لغزیدن لغزش کردن بالاخره گفت چی شد؟ بدت لهما سواتو همان اینها را چی کرد؟ اونموره وقتی که لباس زیبای جنت از جانشان دور کرد اعضای بدنشان مکشوب شد دیدن که ما لباس نداریم اینجا و متفق و یخسفان من ورق الجنه آمدن از برگ های کدام بوته که در جنت بود از برگ های او استفاده کردند و عورت خود می پوشاندند شیطان به هدف خود رسید تا که اینا از لباس عزت و کرامت اریان بسازد به میشکل شکل شیطان باز آمد بعد از عزت ابراهیم علیه سلام و عزت سل... اسماعیل و اصحاق علیه سلام بعد از این مبارکا باز دید که مردم در اطراف کعبه عبا به اساس سنت و طریقه ابراهیم علیه سلام تواف میکنند حامد بر از اینا گفت برای اینا را خواستاستا بطارا نیزی که کعبه ساخت و بر از اینا گفت که لباس نبوشه این لباس تو چرک هست این لباس بدرد نمی خرابشه تو رسو چنان است بالاخره یاره وادار ساخت که اینا لباسهای خدا بکشه و در اطراف کعبه هم مشرکین چی میکردند بیدون لباس بدون لباس تواف میکردن وقتی که اینا تواف بدون لباس میکردن این تواف بدون لباسی از اینا سبر عزیز شد که ایوازی که در اونجا عبادت بکنن مصروف و مشغول و فتنه و ایگپا میشدن به این شکل وسیله بزرگ شیطان در تمامی عصرها اینمی به و به لباسیست از این خاطر حکم خداوند متعال جل جلاله است که هر عمل انسان مسلمان هر عملی که انسان مسلمان میکنه اگر این عمل از از حیا و از اخلاق دور باشه هیچ ارزش نداره نماز می خونیم بله اگر در نماز فرض است که باید ستر عورت باشه اگر ستر اورات نبود نماز فاسد میشه اللهم ایلا در حالاتی که ضرورت قصوه که بازی را فقه های کرام گفتن که در بعضی حالاتی که انسان لباس نمیفه و چی نمیفه او را باد با شرایت گفتن اما اگر اینسان امکانات داره و لباس نپوشه عورتش کشف شود نمازش نمیشه زکات حکم خداوند است لا تبتلو صدقات کم بل من نیوال ازم زکاتتان شما با مننت گزاری و ضرر رسان... رسانی که بد اخلاقی هست باطل نکند بناهان اگر کسی زکات میده در جریان زکات دادن و کسی مسکی ده که به زکات میتاه را امراض بد اخلاقی میکنه ثواب زکاتش باطل شد حج فلا رفس ولا فسوقا ولا جداله فل حج، وقتی که به حج رفتین از فسق و از رفص و از جدال و مجادله های بیجا باید انسان اجتناب بکنه بنابراین این قایده کلی هست که هر حکم اسلامی منفع اخلاق مساوی به هیچیست هیچ ارزش ندارن از این خاطر اخلاق حیا و شرم و بالباسی یکی از اساسات مهم دین مقدس اسلام است. با این اساس خداوند متعال جلجالهو همیشه مسلمان ها را دعوت میکنن بچه به اخلاق و چشم پوشی عوضضو اللهی من شطان رجیم بسم الله الرحمن الرحیم قول مؤمین یا غ من ابصارهم و احفظ و بگوید برای مسلمان که چشم پوشی بکنن یعنی به طرف ناموس مردم با طرف زنان نامحرم و طرف دختران نامحرم سیل نکنین یاقددو من افصار هم چشم پوشی بکنن و احفظ فروج و شعر های خدا حفظ بکن ظکه، از کالاهم ای بسیار زکان از کال بسیار پاکتر است که شما به شکل پاک زندگی بکنند. اینالله خبیرم به ما یعنی و خداوند با خبر است از آن چی میکنن و کل المؤمنات و همچنان بگو بر زنهای مؤمنه زنانی که ایمان دارن زنانی که با حکم خدا و حکم قرآن تن در میدهن بر ازیزانها هم بگویند که یه من افسارهن آف نه و یه نفرو جهن نه. چیه؟ جه وا ی دیین زیینتهان در ال مازه از این خاطر بر از اینا هم حک به خداوان بشد بر ازنا هم بگوین که چشم پوشی بکنن، یعنی تنها بر مردان زن ها هم باید چشم پوشی بکنن، از دیدن نامرمما؟ و احفب و پروه ها نباشه شرمگاه های خودن جاهایی که شرم ساب میشن اینا هم حفظ بکن، یوب دیین زیینتهان ال مازه حرمن و زینت خود آشکار نسازن مگر آ سوئین زینت ازنا که بدون اختیار ازنا آشکار میشه امام مودودی میگن که اینجا نگفت که ما ازهره گفت زهره اون چیزی که امکانات به اختیار هزینه نیست مثلا جلبا پوشیدن لباس پوشیدن چادر پوشیدن ستر کرده لکن بعضی اعضای بدن وقتی که در آمیرا باز هم از پشت لباس کم کم آشکار میشه الا ما ظهره من هارو گفت داده اما اینه که ما ظهره که خودش اورا ظاهر بکنه و مثلا آرایش رو بکنه و بردگرها خدا نشان بده او در این حکم خداون در شامل نمیشه بلکه باید انسان این زن مسلمان از, از, از این خاطر بر مسلمان ها گفته میشه که چشم پوشی بکنین شرمگاه هایتانه حفظ بکنین و شاعر چی میگه میگه بشنو از چادر که در توصیف زن تارو پودش با تو میگوید سخن میگه کنش که چادر ای خواهر مسلمان ببین که چادر هم رای تو گپ میزنه بشنو بس چادر که در توصیف زن تارو پودش با تو میگوید سخن تا پودم از شرافت تافتم یعنی چادری که هست این تاروپود من به خاطر شرافت است به خاطر عزت است به خاطر کرامت است تاروپودم از شرافت تافته تا شرافت را به اسمت بافتن اینمی چادر از تاروپود شرافت جور شده تا که انسان به اسمت پاکی برسانه در کلاس حفظ تقوی و شرف در کلاس حفظ تقوی و شرف دختران درن چادر چون سرفت چه خوب شاعر میگم وقتی که گپ از عزت و شرافت و کرامت شوه دختران مسلمان مثل گوهر و در هستند دانه های قیمتی و با ارزش هستند و چادر مثل صدف وار است که در همیشه دور و گوهر هر در, در, در, در بین صدف می باشه هیچ وقت نایده باشه که یک نفر گوهر الماس دانه قیمتی رو در روی سرک بیندازه ها چارمخز پوچک بادام گنده پسته خراب شده او رو باز میگیره از خانه سرک میپده اما چیزهای خوب خوبه همیشه انسان با در جای خوب میگذاره در کلاس حفظ تقوی و شرف دختران درن چادر چون صدف بهترین سرمایه زن چادر است بهترین سرمایه زن چادر است زان که زیب و زینت زن چادر است حفظ چادر در سرای اقتدار دختران راست تاج افتخار حفظ چادر حفظ دین و مذهب است حفظ چادر حفظ دین و مذهب است شیوه ازواج پاک احمد است چادر چیز عادی است پس وقتی که تو چادر می پوشی و حفظ هیا می کنی اینجا چی هست میگم حفظ چادر حفظ دین و مذهب است کسی که علاقمند دین است کسی که علاقمند مذهب است خواهر که علاقمند دین و مذهب است ای چادر خودا حفظ می کنن. چرا؟ چرا که شیوه ازواج پاک احمد است ای چادر نمونه و مثال از شخصیت زنان قهرمان ازواج متحرات چادر بی بی فاطمت و زهرا چادر بی, بی زینب سلام الله علیها چادر بیبی بی, بی رحمه الله رضی الله عنها و چادر بی خدیجت بی خدیجه بیبی بی خدیجت زنی بود که در مجلس ششته و در بین ده ها هزار از صحابه کرام حضرت جبریل امین می و میگه که ای محمد صلی الله علیه و سلم برای آل یک زن پیش تو که ظرف از غذا در دستش است برش بگو که خدای عز وجل برای تو سلام me for the sand. و برش بگو که خدای عزوجل بر تو قصر از قصرهای جنت آماده کرده ای به خاطر چی بود به خاطر ازی بود که ببید خدیجت الکبرا عفیف ترین و پاکترین و نظریفترین و قهرمانترین ترین زن در تاریخ اسلام گذشته است حفظ چادر حفظ بین و مذهب است شیوه از ازواج پاک احمد است حفظ چادر چاره کارهاست حفظ گل از حجوم خارهاست اگر میخواه که گل از حجوم ها دور باشه از این خاطر باید با چادر حجاب با چادر حیا خدا بپشانم اگر میخواه که در روز قیامت در, در صفه زنهای پاک ازواج متحرات صحابیات زنان آل بیت پیغمبر حشر شد پس لازم است که در این روز با اونمون لباس از با لباس پاک از زنوا تحت چادر بیبی بی ها زندگی بکنن تا در روز قیامت در جمله بیبی ها حشر شود خب موضوع مهم در اینجا ای است که اول باید ما فرق بین اندازه عورت مرد ها و زنوا را بفهمیم اصلا اول عورت مرد هاست عورت مرد ها کجاست عورت مرد با مرد و عورت مرد با زن بردها عورتشان از زیر ناف تا و زیر زانو هست زانو هم در عورت شامل است از این خاطر یکی لباس فرضی عورت است و یکی لباس فضیلت و سنت پیغمبر صلی الله علیه و سلم است لباس فرضی بر مردها است که از زیر ناف تا زیر زانو باید بپوشند حتی در حالت فوتبال در حالت ورزش در حالت که هر حالت باشه حتی در حمام حتی در حوض او بازی این مقدار عورت فرض غلیظه مردها است باید اید سطر بکنن این لباس فرضی یا ستر اورات فرضی برای مرد و لباس پسان میخوانیم که لباس فضیلت و کرامت است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم پیران را خوش داشت که آستین داشته باشند و همیشه پیغمبر صلی الله علیه و سلم پیران می پوشید که آستیناش تا دستش می بود و این لباس دیگه است که مثلا پوشیدن لونگی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه به مرتا شما تعمم و شما لونگی به سر بکنید چرا که در لنگی سیما ملائکه است چهره های ملائکه و وقتی که ملائکه ها صحب مسلمان ها به ضد کفار می و بعضی از اصحاب کرام اونا را دیدن می دیدن ما که بالونگی های سیاه در سرشان در اونجا به ضد کفار مبارزه می کردن و همشانان حضرت پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم لباس شرف مثلا بالونگی پوشیدن لباس بسیار گشاده پوشیدن این لباس عزت و شرافت است اما سطر عورت فرضی که حتی در وقت بسیار در جاهای مهم که در تشناب و همام و در سپورت و در حالات چیز هم باشه آبازی هم باشد باید از زیر زانو تا زیر ناف که زانو هم و ورانها هم در فرض عورت شامل هستند. در قسمت عورت زن با زن مثلا زنها چند قسم عورت دارند؟ یکی اورات زن بازن است دوم اورات زن است با مرد اینال زن با مردها انان اورات زن بازن هم مثل اورات مرد با مرد است یعنی از زیر ناف تا زیر زانو در جمله اورات فرضی از اونا هم است یعنی اگر یک خانم با یک خانم دیگر در یک جای تنامی باشد نباید این اوراتش به می اندازی اورات مرد است که این اعضای اورات غلیزهش باید معلوم نشد بعضی به تفاوت هستند در قسمت انا در قسمت عورت زن با مردها اینجا سی حکم است در قسمت عورت زن با مردها سی حکم است یکی عورت زن با شوهرش اینجا علماء و فقه های کرام میگن که بین خانم و شوهر ایک عورت وجود نداره. ایک عورت نیست بین خانم و بین شوهر دوم عورت خانم با مردهای محرمش عورت زن با مردهای های محرمش چقدر است اونمو مثل اعراث مرد با مرد هست مثلا از زیر ناف تا زیر زانو اینی اعراث زن هست با امرا محرمش مثلا چطوری میتونیم تشریح بکنیم مثلا یک خانم امرا پدر خود امرا کاکای خود امرا برادر خود امرا پسر خود مثلا وقتی خانه خواهرت میری خواهرت تلفن خود شیر میده پیش رو به نان چون تو محرمش هستی او نمیشه نمیشن چون اورد فرزی از اونیست یا مثلا در خانه هستی خواهرت خمیر میکنه آستینای خود بالا کردن بنان آستیناش آسینایش معلوم میشن از این خاطر این قسمت های ده ده ده ده تختی سینه و تختی پشت و دستات و به یا و از از ام ام زانوها پایین کرد، اینا در قسمت اورد با محارم از فرض نیست به اون اورد زنها با محارمشان محارمشان کیست؟ مثلا پدرش است، بسرش است، برادرش است، کاکایش است، ماماش است. امرای از اینا اوردشان مثل اورد مرد با مرد است. یعنی اگر طفل خود پیش روی مامای خود یا پیش پدر خود شیر اینجا اگر اوتو خیه میکنه خودشو الاده گپ پس اما اگر مثلا کالا یا استیناش هایش است در بین خانه پیش برادرش یا پدرش این پروانه میکنه اما اگر کوشش میکنه و احجاد میکنه احجادی گپا بهترتر است و در قسمت عورت زن با بیگانه ها در قسمت زن با بیگانه ها اینی بسیار دقیق است که او رو قسمتایش است اصل که اسلام زیادتر سرد تن تعریف میکنه عورت زن با مردان بیگانه که محارمش نباشه شوهرش نباشه برادر قوم و, و از خودگیش مثلا عطا طومای انسان باید انسان متواجی باشن زنا در قسمت ایوار بسیار بیتفاوت هستند ایوار رو تو فکر میکنن مثل بیادر خود ورسیس خورجان تو ایوار مثلا فکر میکنی و بی نیست نکای تو بر از اون بعد از فوت شوهرت برش نکای تو جایز است از این خاطر مثلا بسیاری کسا در قسمت زناسان در مقابل ایوار خود بسیار بی‌تفاوت هستند مردها در مقابل خیاشناهای خود بسیار بیتفاوت هستند و اینی جفا را مراعات نمیکنن بسیاری مرد است مثلا خانم خود که به برادر جوان خود در یک اتاق خواب این اینا رواست محرمش نیست دیگه گناه‌کار چرا که او محرمش گفته نمیشه؟ اینها در قسمت مردهای بگانه اینجا سطر اورد چی هست؟ سطر اوردی هست که اینجا علمه علمه احناف و مالکی میگن که تمام اعضای بدنش سطر غیر از روش و دو کف دستش بنامه دو کف دستش از بندها به این طرف و و حتی بعض پاخار از بجلک ها پایین اینها هم میگم که این در جمله چیز عورت فرضی نیست ببینیم باز ای باز در هجاب باز یک بحث دیگه داره که باز فرق میکنه فرق بین سطر عورت و هجاب است علمه های احناف میگن از که روی, روی فرض نیست به خاطر از اینکه زنا وقتی که در حج میرن در تواف اینجا روحایشان لش میباشن از این خاطر اما مویشان گردنشان یا در فرض سطر عورت داخل است از این خاطر باید خوسان در افغانستان در قسمت موها بسیار بی‌تفاوتی صورت میگیره با پیغمبرستان در حدیث شریف هست میگه که ما وقتی که ما را بردن در دون بالایکا آمدن و ما را به خود بردن و در قسمت رسیدیم که یک تعداد زنا از استستون های خود آویزان شده بودند و یک تعداد زن را دیدم که از موهایشان کشال است وقتی که از اینها پرسان کردم که این زن که از موهای خود کشال هستند این عذاب برزخ در قبر یذاب برشون داده و از های خود کشال گفت که اینا در قسمت پستان های خود و در موهای خود در مقابل نامحرم ها و بیگونه ها بتفاوت بودن مثلا یک زن بینید که کتیوار خود شیشه موی معلوم میشه موی شورت از فرض است گردنش معلوم میشه بسیاری زن بسیار دین دارم در افغانستان دیدم که خوب نماز پنج وقت میکنه خوب دین داره خوب با خدا هست لکن در قسمت موی های خود بسیار بتفاوت است در گردن خود بسیار بتفاوت است در یقه خود بسیار بتفاوت است قطع دامات همشیره خود میشیه در اتاق استراحت میکنن ولی دامات خواهر تو بر تو محرم شد نارواز حرام است بر تو نامرم است دامات بهبرادر دامات خواهرت مثلا دامات عممه دامات مامای کت از او وقتی به شد قراروار میرن در بین خانه خود وال یهشوی خوار است یه شوی زاریم است و یشی است و شوی فلانانییم است و باز بسیار این دارد بسیار با تکواه هست دین باید باید کل یا ایین اما و طلو سلم کاف اممثل مانا داخل شونن در اسلام مکمل داخل شد اونجا نماز میخونه ولی وقتی که حل کنیم مدونه احرام از اینکه شسته معلوم میشه گردنش معلوم میشه بتفاوت از چادرش عین در فرق سرش رفته و ایست دقصه شام نیست و بعضی پسان وقتی ببینیم از تقوا بسیار گپ میزنه ولی تقواش نیست از این خاطر باید خواهرای مسلمان و ما و شما در قسمت موها و گردن خود بسیار احتیاط بکنند و علمای شافی و هنبلی اینا میگن که تمام اعضای بدنشان بدون استثناء اتا روی و دستا هم در جمعه عورت از این خاطر خانم های متدین که در مذهب شافی و هنبلی هستن اکثرشان اتا در مراسم حج ببینی رویشان می میباشن و دستای خود در اون مراسم هم دسکش میپوشن و این نظریات از اینا هست این نظریات اختلافات فقه است. اما باز علمای احناف در قسمت هجاب میگن که اگر روی زن روی زن سبب فتنه نمیشه زیبایی زیاد داره از او خاطر رمهه او باید با حجاب خود روی خودن بپشانه چرا؟ که باز اینجا خوف فتنه است اما اگر یک زنه که مثلا بدقواره هست و چیرش و قدر سبب فتنه و فساد نمیشه و کمپیر هست او دیگه باز میتونه که اگر بچاره چیزام کرد سبب فتنه نمیشه باز او به تمک برش چیره هست دیگه <تصفح> <تصفح> چیزی که, که در خط است، خب یک ایناله، حال این حال موضوع،, موضوع دیگه هستم شرط در لباس برادر را بعضی کسا میگن که در اسلام لباس اسلامی نیست و برادر عزیز او خوهر ما لباس اسلامی هست با شرایط اگر اینی شرط ها را داشت لباس تو اسلامی است و اگر نداشت لباس تو اسلامی نیست ما در قسمت لباس دو قسم شرط داریم یک شرط عام است که هم بالای زناف فرز است لازم است و هم بالای مردها. بسیاری بسری وقتا در وقت سطر اورد که میشه مرد ها دکه بیهی خودم ما قرار میتگیم میگه ما دکه هر چیز کردیم ما خود مرد هستم حالا که مرد هستی به تو حکم خداوند نیست را شرط های آن بالای مردها هم از بالای زن ها سه شرط دار لباس زن ها و مرد ها عمومی اول نازک نباشند لباس مثلا بسیاری مردها است فردم تنبان شد تو نازک شده که بیفی پوست سیر گشتن که وقتی در روشنی بگردن اعضای بدنشو چخ معلوم میشه بنا ان از لباس از تکههای نازک ململی و یپا بر خود لباس جور بکنیم چرا که این شرط لباس مردها هم است و برای زنا هم لباس نازک ناروا هست مثلا بسیاری مردها هستن برن بر خانه خود تکی گاچ میخرن تکی گاچ سطح عورت نمیشن وام مثل دیگه سرش لچ باشه بناهان پوشیدن چادر گاچ استین گاچ پیرانای نازک این شرط است که باید لباس نازک نباشه از این خاطر کسی که چادر گاچ می پوشه و برای خانم خود می او به چاره از سطر عورت دور می سازه چرا که نماز دارم کرده چادر گاچ بخانم اونجا که تو نامحرم سنش سعید کنی میایش معلوم میشه. شه میایش معلوم کوتاه می شه بعضی ها مثلا پیران نیماستینه جور میکنن خب از مردها خب بازوهایشان یا اینجاشان خب فرض عورت نیست اما بعض زنها ناروا هست پیرانهای نیماستینه جور میکنن و شوهرشان برش خوشحال است. هم و یا مثلا انسان مثلا لباس کوتاهی که مثلا عورت زن باید کوتاه نباشه مثلا بعضی جوونا هستن وقتی که سپورت میکنن نیکرای میپوشن که ران و زانوهایشان معلوم میشه ترکه فرض کردن پس باید در حالت سپورت هم امو آداب اسلامی خودا مراحت بکنن و شرط سومش است که باید چسب نباشن بسیار چسبیدن مثلا بعضی کساس اوتو میپوشه که فکر میکنه که جان خود رنگ کردن از خاطر مرد باشه یا زن باشه از خاطر عورتش معلوم میشا وقتی که یک لباس چسبه که کسی میپوشه که اعضای بدن از او آشکارا میشن بنا این ترک فرض کرده و گناگاه شده 2 شرط عام است نازک نباشه کوتاه نباشه و چسب نباشه این چه هست بالای مرد و زن است در قسمت زن ها بس 3 شرط دیگه هم است که زن ها این خاص زن ها علاوه سه 3 شرط 3 شرط دیگه هم است که باید خانم ها وقتی که بیرون از خانه خود میبرایند در بازار و در بیرون از انزل, رنگ های جذاب نپوشن رنگ سرخی بسیار تیز بیران زریع بسیار تیز که این از 16 متری و یک کلومتری اه? بل بل بل کلا کده باشن اجاز نیستن و بودهایش آواز نداشته باشن بعضی خودتان در وضعات ها که میری تک تک تک تک تک تک تک تک تک در میکنه کل سای چی دار ولی یه داری ببینه گفته که نزنه در پای خود که حتا شد که باید به خاطر چی باید بکن باید بوده بپوشن که پخشی باشن و آواز نداشته باشه که چیز کنن این شرط دوم در لباس های چی هستن زن ها دیگه اتراغین نباشن یعنی لباس زنها باید چی نداشته باشن وقتی که یک خانم از خانه خود خارج میشن باید عطر نزنن اگر یک زن عطر میزنن آرایش میکنن در داخل خانه خود برای شوهر خود اما اگر عطر میزنه و بیرون میرن در حدیث شریف است که هر زن که اتر بزنه و از خانه بیرون برای داروی سرک و بازار اتراه فهی زانیه در جمله زناکار را حساب میشه خب از این خاطر شاعر چی میگه؟ شاعر برای خواهران خطاب میکنم میگه که در خیابان جهره آرایش مکن از جوانان سلب آسایش مکن ظلف خود از روسری بیرون مریز. در مسیر ها افسون مریز یاد کن از آتش روز معاد جلوه گیسو مدی در دست باد خب اوتاستاس بر بر داخل میتم یاد کن از آتش روز معاد جلوه گیسو مدی در دست باد خواهرم دیگر تو کودک نیستی خواهرم دیگر تو کودک نیستی فاشتر گویم عروسک نیستی. خواهر من این لباس تنگ چیست؟ پوشش چسبان و رنگارنگ چیست؟ خواهرم خواهرم این قدر تننازی مکن با اصول شهر لش بازی مکن خواهرم ای عاشق دینی موبین یک نظر از واژ پیامبر ببین. ای خوهر عزیزم تو که میگی من مسلمان استم تو که میگی من متدهین استم تو که میگی من از خدا میدرستم با خان خصیه ازواج پیغمبر صلی الله علیه و وسلم بیبی آجت الكبرا یک خانم میره دید که چادر نازک مثل گاچوارو پیشیده گرفت چادرشه چون از اخاربش بود اعتبار دستش چادرشه گرفت باره باره کرد چادر دبله دیگه بر شاهد گفت اینی چادر است بیبی بی آیشت الکبرا رفت تا وقتی که میگه پیغمبر صلی اللہ علیه و بود در قبر شگان دارد میرفت السلام علیکم اهل دیار المؤمنین برای برد وقتی که پدرش پالیش دفن کردن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ پدرش بود پالای پیغمبر دفنش کردن میرفت چون یکی شوهرش بود دیگه هم پدرش مهارمش بود وقتی که حضرت عمر رضی الله تعالی رحلت کرد و آوردن حضرت عمر را بالا جفن کردن یا نمی‌رفت یا که میرفت از قبر از روی خدا پات میگرد یعنی قطره حیا میگه پس ما و شما ببینیم وقتی که پیرو بی از اونا هستیم باید حیای از اونها را باید داشته باشیم بعضی کسا هستن چی میگن بعضی از کسایی که شیطان بر از اونا وسوسه بس کرده میگه دل ما پاک است خداي عز و جل آیت قرآن برمیگه و قل للمؤمنات بر مؤمنات ایره بگو, ایر بگو, ایر بگو و بر مردها ایره بگو خود دل تو پاک است آیا دل دیگران ها پاک کلگی پاک است این کسی که میگه دل ما پاک است و من سطر عورت نمی روی خود پت آرایش میکنم دل ما پاک است در حقیقت غیر مستقیم خی اصحاب کرام ازواج متحرات و متهم می کنم خیدمه دونا ناپاک بود الا عیاض بله اونا چرا خی اصرار میکردن پیغمبر صلی الله علیه و سلم آهل بید پیغمبر صلی الله علیه و سلم ازواج متحرات صحابه اکرام اینا وقتی که بسیار در قسمت حجاب و سطر عورت کوشش میکردن ازواج که دل موتوب پاک شد پس ای فریب شیطان است چرا خوارای دیز خود فریب میدید حتی بازی از مردها حسن خدا فریب میتن که نه ولما تو پاکست سر خانم مد تو اعتبار دارم که اگر بیخی بدون لباس هم داروی سرک بگرد تو سر از تو اعتبار داری سر مردها اعتبار داری از این خاطر بسیاری کساست که خدا فریب میدن. در حدیث شریف است یک حدیث بسیار دقیق و خطرناک که ایرای باید ارزن مسلمان و هر مرد مسلمان ایرا نصب عینه گفته گفتی عرب ها دست چشم خود داشته باشه این است که عن ابی هریره رضی الله و عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلام گفت که سنفان من اهل النار لا اراهم بعد ایرای ما میگن که این ای از اعجاز ذو حدیث نبوی شریف است پیغمبر صلی الله علیه و سلام خبر میده که دو تا از دوزخی است که ما وارد ندیدیم تا بالی یعنی در اصحاب ما و در آل بیت ما و در بین زنای مسلمان در عصر پیغمبر صلی الله علیه وسلم این دو طایفه نبودند لکن فسان پیدا میشن دو طایفه دوزخی هاست که در عصر ما وجود نداشت این دو طایفه که ما به معریفی میگامند در عصر ما قطعا وجود نداشت اگر کس میگه دروغ میگه از این خاطر این دو طایفه کسانی هستند که من اهل نار لا اراهما بعدو تا به حال نگه ما اون رو نبیدیم نسا اون عاریات زنهای هستند که لباس دارن لباس پوشیدن لکن با وجودی که لباس پوشیدن لباس هستند. کاسیاتن لباس پوشیدن در ظاهر زعم خودش لباس پوشیده لکن به حکم خدا ای به رحنه هست چی کردم؟ یا لباسش نازک است، آستین گاچ است، چادر گاچ است، پیران نازک است که این میگه پوشیدیم، او تمام اعضای بدنش معلوم میشه. این کاسیاتن آریاتن، خودشان لباس پوشیدن، لکن لو چستن. یا لباسش کوتاه کوتاه آستین نیم قولا، بغلش چاکاش کلان کلان، پنجابی وقتی که میشیند تمام اعضای بدنش معلوم میشه. کاسیاتن آریاد و یوجی که چسب بس وقتی که از دور سال کنی کنیم میگم الان من خبر ندارم مولیکا خدا اما کشمنی مال لباس میشینیم کشمیکرا تا بدلون یکو نیم سال تا که باشه بدلون ها تا کی میشه این هم در جوبلی کاسیورتن آریاد آر و تا تا مرد های کاسی که تا آریادان دست ما پیدا شدن <تصفيق> و کاسیاتون آریاتون ها تو لباس بیه که وانا که ببینیم رنگ کدگی مائلاتن ممیلاتن، مائلاتن خودشان سکو اهل دوزه کاسیات آریات یک صفت و مائلاتن ممیلات خودش به طرف نامحرما مائل میکنن. اگر تو مائل نداریم اگر تو مایل نداری خیلی تو در روی سرک عمومی شش قلم آرایش کردن نبرایی چی میخوایی چی هدف داری اگر برای دست میری هدفت مقدس است وسیلیتان باید چی باشه؟ مقدس, مقدس باشم تو خو که اگر من سلخی سفیده کردم دست خواندم میتونم اگر نکردم. در ایران و در امارات متحید در روی زراعی رمائیدیم رو که دکتورا دارن علمای بزرگ بزرگ هستن علمای هستن که استاده هستن رئیس های پوانتون هستن ولی با حجاب هستن اینال ایزدن های اهل دوزخی هستند که مائلاتون اول خودشان مایل دارن به طرف دیگرها و ممیلاتون و دیگرها را به طرف خود کش میکنن هم خودش علاقمند مند نامهرم و هم دیگرها را به تست خود به طرف خود کش میکنن که باشن لباس نازوک لباس خراب آرایش غلیظ و دل... عطرها و بوهای طرق دمیه از این پالوت که تر میشه وقت سل میگنه میگرد کدام عطر فروشتیر شد از این خاطر مائلات و ممیلات علا رؤوسه هنه مثل اسنمت البخت المائله میگه از سرهای خود طوفان کردن داراشگای توفان مثل کوپانهای شطرهای بخت و شطرهای رو که کوپانها کتا کتا دارن او تو میلان میکنن نصف سرشید طرف با این دفتر یا مثلا میوی خدا شکل دادن شکل دادن مثل کوبانو شتوروار گالون گالون اینترسیر اینجا حرکت میکنن و در سرک ها خیر شکل بت بورد با خانیت آرایش بکود با این خانیت برای فامینت برای جهت بزن لباس خوب بپوش لكن با این خانیت با عزت و با شرافت و با کرامت با عزت بر خب لا یرین الجنه لا یرین الجنه تا ولا یجدن ریحه ها اعوذ بالله من شیطان دادیم خدای پاک ما شما را برادر عزیز ما شما حق داریم باید پاهره و دخترها یک زن چهار مردکت دو دوزخ میبرن یک زن اگر دوزخی شده چهار تا مردکت خود دوزخ میبرن پدر خودم میبره کشکش گدن شوهر خودم میبره بچه خودم میبره برادر خودم این چهار تا رکت خود میبرن شرکینی می چهار نفر که بی‌غیرت شد. چقدر چیکار کردن؟ مثل معنی نه قدمی شو اجازه ایناله <تصفح> ایناله در جریان درس قرنزم فقط که درس چی میشه؟ یادواد میشه مردم به کنایات هم چیزایی. باز آخر اگه گفت میگفتی که تفسیر کن ایناله لا یجتنا ريحها لا یرین الجنت این قسم زنهایی که کاسیاتون آریاتون مائلاتون ممیلاتون زنهایی که لباس کشیدن لیکن در حقیقت بی لباس هستن خودشان به طرف نامحرم ها میکنن و نامحرم ها به طرف خود کش میکنن جزب میکنن یا میگن لا یدخل الج... لا یرین به چشم خود نمیبینه ولی یجب نریحه و حتی از بوی جنت هم مستفید نمیشن و در یک حدیث شریف دیگه است که بوی جنت از 500 سال مسافه در دماغ انسان میاد. رسید و قسم دوم مردمایی که اینا هم دوزخی ها هستن مردها هستن که مهم اصواتون که دادستشان دستشان ها و کمربند هاست که از ناب البخری مثل دنبای گاواره یادریبونه به هنناس بیچارم از کتمه کت قمشنا زده میرن در روی سرک و در روی بازار و در هر چای و در بندی خانه و در فلان دیگه ای هم از جمله زیران هست حدیث نمبر 8311 باقی مسند المکزرین در مسند امام احمد بن احمد رحمه الله خب اینال ای هست از این خاطر خداوند متعال جل جلوهو بر مردهای امت اسلامی میه که شما مردهای ایوهاللدین آمنو ای کسانی که شما ادعای ایمان میکنیم قو انفوسکم و اهلیکم نار. شما خود و اهلتان فامیل دانا از آتش دوزخ وقایه بکنین قو فعل امرس از وقایه که وقایه تن وقایه بکنین از آتش دوزخ هم خود هم اعضای فامیل تو فرمان که خواهر جان مادر جان خانم عزیز مادر عزیز دختر عزیز احکام خداوند را سر تدبیق بگو اردوی ما به طرف جنت بریم در غیر که شوهری که با ایک شکل و با این لباس خانمش کاسیات آریات مائلات، مومیلات میبیرون ببراید این خودش هم یک نقص نیکن که در پیشانوی خودش هم طاقه اگر که زدن میشه اون که شانزا تا کمره ها را برش چالان میکنه در بین هوتلا خودی از این مرده که هم برش مشکل پیدا میشه بردر بر خودش هم مشکل پیدا میشه ایناله فرق است بین چی فرق است؟ بین سطر اورد و حجاب آیات شریف است که یدنین علیه هن من جلابی به یکی سطر اورد است که ما شما گفتیم ایناله خود جلابیب جمع جلباب است و جلباب اینا علما میگن که چادر است بالای چادر اولی حجاب چادر است یک چادر دگی که این چادر بالای چادر اولی می یعنی <تصحیح> <تصح> یک چادر داره و چادر دومی که این جلباب گفته میشه جلباب عبارت از چادر است که از سر تا قدم تا با پاین کل لباس ها را می این لباس لباس هجاب میگن. از این خاطر حضرت امو سلمه رضی اللہ تعالی روایت می که لما نزلت هذه آیتو وقتی که آیت چریف نازل شد که یهنین علیهن من جلابی بهن خرج نساء الانصار که ان على رؤوسهن الغربان من سکینتی مثل این که بیگانه های انصار مثل که در سر از اینها زاق باشه عزیزی که اینا با اونمتو سکون و با و علیهن اکسیه سودن یلبسنه ها و دیگر لباس های بود که اینا در سر لباس های خود پوشیده بودن یعنی آیته قرآن وقتی که درباره حجاب نازل شد این چادر دگیرا بر علاوه از این پوشیدن که این لباس چی بود لباس حجاب بود و این یکی از علما میگن که این چی هسته؟ خب در قسمت جلباب مفسرین تحویلات زیاد کردن و یک عالم بگم میگم،, میگم از یک عالم برسان کردن به جلباب چی هست یک چادر کلا نپوشید تمام جسم خودا درمون چادر توداد پوشان یک جسمش معلوم میشد این هم در روایت ها آمده که یعنی جلباب به یه اندازه باید لباس اضافه بر لباس سطر چی هستن خب یک یک دیگه هست که ارتباط حجاب به جنسیت نه به انسانیت. یعنی حجاب چرا می پوشن؟ انسان حقوق انسانی یک خانم کاملا در دین مقدس اسلام تمام حقوقش برجا داده شده حجاب چرا هست همین قسمی که ستر عورت بالای مردها هست ستر عورت بالای زنها هم است و حجاب به خاطر حفظ بهتر از را شرافت و کرامت بیشترشان این به خاطر چی هستن جنسیت از هست چون اینها جنس لطیف هستند از این خاطر برشان این لباس می بوشند نه به خاطر انسانیت از چون انسان کلج انسان ها هست، و در شخصیت از ایش کدام نقص نمیکنم بلکه لباس حجاب بر شخصیت ازی انوز شخصیت چرا؟ ببین یک ها چی میگه مگز می زن بسان گل بود در باغ گلزار جهان مرد او اندر مسل باشد چو مرد باغبان باغبان باید که دیوار کشد بر دور باغ تا گلش ایمن شود از دست برد این و آن مرد هم باید بپوشاند بزن زیب حجاب تا که باشد همسرش هم وارد در امن و امان ورنه می باید ببیند باد چشم خیشتن غنچه ناموس خود را در کف بیگانگان کسانی که حجاب مراعات نمی کنن کسانی که حجاب به تفاوت می باشن به مرزهای که انسانهای به حجاب مبتلا هستند، اینا هم به این مرزها مبتلا می ایرانی است چیز قصه خدا نشه کرده که من از ایران رفتم مگه به آلمان به خاطر از این میگه آلمان رفتم که اونجا آزادی هست یه روز میگه یک جوان مرا از دستم گرفت کش کرد به پای موتر خادم خود. خودی من کردم دست کول رفتم پیش پلیس وقتی که پیش پلیس رفتم پلیس گفت چی پس میگه من برش گفتم که اینی جوان مرا کش کرد به موتر خود بالا میگه گفت پلیس برای من بالا میشیدی میگم من گفتم که توی احمق پرویس نه این من ایک دختر اینجانی مسلمان استم تو دختر اینجانی مسلمان که بودی چه در قواریت خیش آثار اسلام دیده نمیشه وقتی که لباس ما رو پوشیدیم پس تو مثل ما وارستیم اگه تو مسلمان بودی لباس اسلامی تمیک بشید که حداقل علامت اسلامی می بود که او جوان آلمانی تر باز میگه می ای دختر میگه بالاخره من توبه کردم و در ده ده چیز ده آلمان در آلمان حجاب پوشیدم در تلویزیون امارات متحده عربی یک زن دکتر بود این دکترا داشت و رئیس یکی از پانتونا استاد رئیسش بود این آمده بود خوب با حجاب بود فقط دو تا چشمایش معلوم میشد ریک برسون که تو استاد هم هستی رئیس هم هستی تو خودت چطور هستی من درس ما میتونم استادی هم میکنم دادفترم کار میکنم کنم با بوجودی هم حجاب اسلامی را حس کردیم گفت ما درباره حجاب بسیار تحقیق کردیم ایزان گفت یکی از اکتشافات ما در ریسرچی که ما کردیم ایست است که هیچ چیز خوب در طبیعت نیست که خداوند رو به حجاب خلق کرده باشه بدن با چیز خوب است پوش داره قلم مارکر خدا گفت این قلم مارکر ممکن که ببینیم چیز خوب است گفت این رو پونش دارد په این دقیق مارکر رو اوز بکو خشک میشن گفت از این خاطر تمام میوه های خوب با هجاب است تمام چیزهای خوب با هجاب است در در بین هجاب صدق هست از این خاطر زن همچون پیش خداوند بسیار چیز با ارزش است از این خاطر برش گفته که باید یه هجاب بکنه. این در قشمت یک عالم دیگه چی میگم یک دانشمند میگم هرگاه مدنیت در بلباسی و اوریانگردی باشد حیوانات باید نسبت به همه متمدن و پیشرفته تر باشن اگه تو بگیرم میگری که آدم لباس نپوشید متمدن میشه و پیشرفته میشه پس از ما و شما که در حیوانات با بشتر باید متمدن باشه چرا که آخه لباس نمی پوشن. ارتباط لباس با آزادی زنان یک زن از بنامه مادام رولان آن بانوی اندیشمند فرانسوی که در دوران انقلاب کبیر فرانسه خانه‌اش کانون نمایندگان مجلس کبیر فرانسه بود هنگامی که دشمنان به سوی تیغه گیوتین می‌بردند تا اعدامش کنند این زن خودش از زنای انقلابی بود در انقلاب فرانسه وقتی که میخواستن اعدام بکنن از مجسمه آزادی گذر کرد سایکو ای از مجسمه آزادی میشه که در فرانسه بود تی میشن روح و مجسمه کرده و گفت آزادی بنام تو چی جنایت ها را مرتکت می شوند برای مجسمه آزادی گفت که تو سمبول آزادی است بنام تو بیچارت چی جنایت ها را می کنند زنا بنامه آزادی وحشت بنامه آزادی. بنامه آزادی. به نام آزادی، دزدی به نام آزادی، بی‌حیایی به نام آزادی، آزادی قینه‌ای، این خود بی‌وندباری است، این خو جنایت است. از این خاطر ای زن برازمه که ای آزادی، به نام تو چی جنایت ها را میکن از این خاطر ارتباط حجاب و آزادی نیست. کی آزاد است و کی غلام؟ او زنه که به خاطر نمیشجادان یک بطری شامپو شانزا ملاق میزنن او آزاد یا غلام؟ غلام است او زنی که خود آرایش میکنه و در معرض مردها مثل تکواره گاهی از عزیز گاهی دهست سو آزاد است یا غلام بردست کنیز است زن آزاد زن است زن است زن ابو سفیان وقتی که یک وقتی براش گفته شد که زن ها باعث نکنه نكنا او گفت آیا زن آزاد هم می کافرایشان هم غیرتی بود حتی کافر هم اگر بود غیرت داشت زن ابو سفیان گفت آیا یک زن آزادم zina میکنه آه یک زن آزاد تسلیمه از این میشه که مردها از وجود از این منفی استفاده بکنن از این خاطر زن بی‌حجاب کنید است برده است غلام از لذسس دیگرها قرار داره وزن باحجاب آزاد است هیچ اونم با عزت و با کرامت خود چرا؟ به خاطری که زن در دین مقدس اسلام هدف است، وسیله نیست. مادر یک هدف است، جنت زیر پای ازو، خواهر مقدس است، همسر مقدس است، دختر مقدس است و پاک است. آیات قرآن از حقوق او هر آیاتی قرآن ببینی که درباره در دفاع از زنها آمدن و اذا الموعوده سئلت بیای زن قتلا. عربه عربها رفاعمان که زیر خاك کردن دختر یک جنایت است. اذا آحاد اون به اون سخا الله و جو کذیم. وقتی که بر شان بشارت دادم، میشد بر جاهلا که خانه دخترش میگه وی دخترش داد. ای وقت این هرت سه از های کردم باز با داشتن دختر افتخار میکردن. این اینجا گفت که ای عادت جاهلاست کسی که از آوردن دختر نن میکنه ای مسلمان کامل نشده عادت جاهلیت در وجود عزیز ازا بوشی را احد هم بلونسازال لوجه و او که چهرش تغییر میکنه مزید خاطر این ای چیستم؟ ای اینجا گفتم که باید چیز کنن عشق یا حوست اگر انسان به مادر خودش خو می‌ورزد، به خدای خودش خو می‌ورزد، به دین خود عشق میورزن به خانم و همسر خود عشق میورزن این عشق حقیقیه، فال که آدم باید عاشق با خدا باشه، عاشق پیغمبر خدا باشه، عاشق فامیل خود باشه، عاشق خانواده خود باشه، اگر این عشق حقیقی داشته باشن این خانم خود به دیگر را می‌گذره؟ کدام انسان با غیرت است؟ اما این هوس بازی است که به نام از که من عشق دارم و محبت دارم این دروغ است هوس بازی هاست که اونارا میگن که شما باید خودا در مقابل دیگران بکشین اونا هیچ نوع محبت صمیمیت با دخترو ندارن خب در قسمتی که لباسی لباس کار مردان هم ما و شما بگوییم حضرت ام سلمه روایت میکنند که دوست داشت تا این لباسا به نزد آنجا سسالم پیروهان بود پیغمبرصلی الله علیه و آله پیروهان بسیار خوش داشت و حضرت عبدالله بن ممیری انگامی که پیرنبس صلی الله علیه و آله دستار با سر میرمود گوشه دستار خیشا در بین دوشانه‌ای خود ایجمه گذاشت یعنی شملش را بین دوشانه‌ای خود میگذاشت ای پی... ای... از بعضی کسانا نه ولی اون لنگی در کتاب و در اسلام ده شریعت یابان است ها اینکه لوکی پروا نداره و این چه صحابین بودت یک پیغمبر صلی الله علیه و این قسم لنگی میپوشید و میگه که تمامم شما لنگی بس هر بکنین پیغمبرさんも لباس چیز خوش داشت و هم گفته که باید پیغمبرさんも پیراهن پیرانهای میپوشید که آستینش تا چی استه تا باند دستش نمی بود ازی خاطر این لباس لباسا پیغمبرさんも لباس سفید خوش داشت این لباس به خاطر مردها است که باید لباس خوب داشته باشن لباس با عزت و با کرامت داشته باشن برای زن ها برای مردها دیگه چی؟ حرام است نارواز در لباسها و در ها پوشیدن تلا و ابریشم برای مردها حرام است از این خاطر یک جوان مسلمان مکلحیت نداره که باید اتمندشی نیخوری خود چلا باید بدست خود بکنه از این خاطر پوشیدن تلا و ابریشم برای مردها نارواز اما بر زنهای امت اسلام اجازه داده شدن حدیث دیگه این لگه که من تشبه به قوم و هو منهم کسی خود مشابه با دیگران میشد در هر چیز او از جملی از اوناست چرا یک محبت با خدا می داشت محبت با پیغمبر خدا می داشت محبت با زنان پاک با پیغمبرش سلام می داشت از این خاطر لباس خدا بود با اونها مشابه می ساد. وقتی که این محبت با دشمنای خدا داره خدا با دشمنای خدا هم رنگ می سازه بنا اندر روز قیامت امرای از, از خود بود خب در قسمت زنا و مرد های لعنت شده یک حدیث شریف آمده، ده پیامبر میگه که یک تعداد مردها و زنایی که اینا لعنت شدن کی هستن لعنت شدگان در قسمت لباس ها کی هستن مرد هایی که خود لباس زنانه می پوشن و زنهایی که خود مشابهت می با مردان لباس های مردانه ها می پوشن از این خاطر این زن و مردهای لعنت شده هستند در حدیث شریف پیامبر سلام الله است ما متاسس خلاص میکنم نکات مهم مهم است خلاص است بعضی بی‌تفاوتی ها در سطر اجاب سبب هلاکت میشن یکی این است که با دیر خواهرای مسلمان ما در نظر داشته باشند که بزرگ شدن طفل در مقابل یک خانم اون را محرم ازو نمی‌سازن بیچاری کساس میگه والله این بچه فلانی خانم یاد کدوز سلام علیکم خوب هستی چوری هستی چطور هستی کی هستی بچه‌ام سعی ما خرترک پیش ما کلام شد اولو کطا مرد که هم سایش ده اولو کدوزو چیز کنه اناله فیو کلام شدنه یک کس انسان اون را تام نمیسازن و بعضی زنا رو ببینی خدا یار جانشون خوسن زرهای پیش سفید مردهای نامحرم نامحرم اصلا میگیره دستش میگیره بازو روش چپ مواش میکنن حالا همه را جان مرد نامحرم ولو تو پشت سفید امستی ولی تو نامحرم است اگر میبچی سر بچه تماش در درست است سر نواسی تماش در درست است اما تو میخیزی عین از نواسه کاکایی بچی مامای خسروتا اونجا تو میخیزی سر از زندگی معنی خاطر ستر حجاب به اساس رقابت از مشکل دیگه یکی از بدیهایی که امروز در افغانستان در چندین جای مشاهده کردیم بعضی مردها چی میگن ولی فلانی خانم خود من که بیشی نه؟ خانم من کتش میمانم فلانی نمان؟ ما نمیمونم یک نوع جهالت از گمراهی است برادر گل یه جایز نمیشه که والا حجابم به حساب چی است رقابت است خانی فلانی رفتم خانه مش آورد نان آورد چای آورد بالاخره من حیدگی چیتوم میکردم ما خرمه گفتم چای نان برداشتیم و خانه فلانی رفتم او بود نمان ما نمانی یک یک, یک جنایت است یا بعضی کسا هستن امسایه کچه هستی یا جای امسایه بودی من را میگن استاد ولی شما ایچ اجتماعی نیستین خب تو من را یاد داده که من اجتماعی شدم چیکونم اینا قبلی ما میشیم در خانه و چای میخوریم و تلویزیون سال میگم ماستون والا اگر اجتماعی باشه که خانم تو خانم ما بیشنم و خانم مده که تو میشینیم و چیز کنیم این اجتماعی نیست بی غیرتیه بی است اگر مشکل داری ای نداری درست است بعضی کسایی نمیخستم بخاطر که اجتماعی با شما چیز داشته باشم دا قبلی خانم میمونه میمونه. از خاطر دا ما میکنیم اگر شیمون مرمه یک بی‌غیرت سعی کنسن زن از اول سرمان با از 11 سال با 14 دست کرد با خدای نمیدونم ما یک جو همصاحب بودیم خدا کنه کس من کسته من اجا ها دیگه صاحب گل خواهر خوانده برادر خوانده مادر و پدر خوانده و فرزند گیرفتن حرمت از بین نمی برن در خانه رفته می اینن یک مرتکی لدر شیشه یکی بیادر خوانده زن است از برای خدا بیادر خواندگی سبب چیز نمیشه بخدا اگر من فکایی بگویم یا مذاق بکنم یعنی <تصفيق> مولایی سیبه هستی اگر من کدام چیز میگم در بیادرخاندگی بیادرخانده خانمم کتازوی دختر جوانش عین از کجا سفر میکنن خانمش سفر میکنن تو از یک کشور به کشور دیگر چیست ای برادر خاندهش در بین خاندهش از خودش میره نو او پدر خانده شوارش قراش شد از این خاطر به برادر خاندگی حرمت نمیشه به برادر خاندگی حرمت نمیشه به خوهر خاندگی حرمت نمیشه حتی اگر یک نفر یک زن یک طفل کلان میکنه و ایره بچه خاندهی خود میگیره تبنی بچه گرفتن و دختر گرفتن حرام هست در اسلام کی بچه‌خونده است یا دخترخونده است این نارواس و حرام از دین مقدس اسلام که باید این کارا ما شما نکنید و او سبب حرمت نمیشه مثلا یک نفر یک بچه رو در خانه خود کلان میکنه وقتی که دختر از این جوان شد و جوان شد اینو نکاش بر ازی جایز است این مادر که ای بچه کلان جوان شد رو در بغل خود بگیره اینو نارواست این خودی ای خوب نمیکنه از این فرزندی فر فر و فر بچه‌خوندیگی و اینی که در دین مقدس اسلام نیست که باید عزین اگر باما و شما خداری بکنیم سبحان ربی که رب العزت و محسیفون و سلام علی المرسلین و الحب دلله رب العالمین